he यह افدار اول کسانی که با کارنین آشنایی کامل داشتند و او را خوب می میدانستند می دانستند که او مرد خونسرد و متین و با است نمی دانستند که وی نقطه ضعفی دارد و آن این است که وی نمی تواند ببیند تفلی یا زنی گریه می کند وقتی زوجش در برابرش به عشق پلید خود نسبت به فرانسکی اعتراف کرد و پس از آن سر رامیان دو دست گرفته و بنای گریستن را گذاشت کارنین متأثر و نگران گردیده دیگر فکر و عقلش کار نمیکرد و نمی توانست کلمه بر زبان جاری سازد کارنین پس از شنیدن اعتراف سریح زوجه خود حس کرد که غم و غصه قلبش را میفشارد همین که تنها در کالیستکه نشست حس کرد که بار سنگینی از دوشش برداشته شده است و از شدت بخت چون چنین پنداشت که وی نه فقط از اظهار مهربانی به زوجه گریان خود رهایی یافته است بلکه همچنین از یک درد و عذاب طاقت فرسایی آسوده شده است حال او مانند مردی بود که دندانی که او را رنج و عذاب میداد و شبها خواب را از چشمانش بیرون میکرد، کشیده باشند و او اکنون میتواند کاملا فکر و اندیشه و زندگی کند. همین حال را کارنین داشت و احساس میکرد که حالا میتواند در امور دیگری غیر از امور دوجهش فکر و اندیشه نماید. کارنین با خود چنین میگفت. زنی است که نه قلب دارد نه شرافت و دیانت من تمام این چیزها را پیش بینی میکردم. ولی از روی مهر و دلسوزی به او کوشش داشتم که خیشتن را فرید بده کارنین با در نظر گرفتن زندگی گذشتش خیشتن را مخاطب قرار داده چون این گفت من اشتباه کردم که آننا را شریک زندگانی خود نمودم ولی من گناهکار نیستم و مستحق سرزنش نمی باشم و نباید بیچاره و بدبخت شوم. کارنین حس کرد که او از پسرش هم مانند مادر او بیزار است و دیگر اهمیتی به آینده این دونه می دهند. چیزی که به نظرش اهمیت داشت، این بود لکهی که از سقوط بر بردامنش نقش بسته بود، پاک کند و زندگانی درست و شرافتمندانه ای را در پیش گیرد. پرنین باز هم خود را مخاطب قرار داده چون این بود. آری، من نباید بدبخت باشم، من نباید به خاطر زن پلیدی که مرتکب خیانت و گناه شده بیچاره شدم، من باید بهترین راه را برای رهایی از این موقعیت ننگین و دشواری که این زن با خیانت و گناه خود برای من فراهم آورده است پیدا کنم و بدون شک این راه را پیدا خواهم کرد. من اولین شوهری نیستم که زن او او را به این روز سیاه افکنده است، بلکه سابقه بر این داریوف پولنفسکی ترانسکارب بابوف کنت باسکودین شاجین و کف به همین درد مبتلا گردیدند درست است که تمام این اشخاص مورد تمسخر و استهزا بودند ولی من برعکس نسبت به آنها مهربانی و دلسوزی مینمودم زیرا آنان قربانی یک واقعی ناگوار زناشویی بودند که ممکن است در هر وقتی بر سر هر شوهری فرود آید و باید دید که ب... به چه وسیله میتوان قضیه را حل و فصل کرد آنگاه کارمین تصمیمات شوهران فریب را که قبل از او در این گونه مواقع اتخاذ کرده اند در ذهن خود گذراند. او پیش خود گفت داریو لفت زن خود را به دوئل دعوت کرد. این فکر کمی او را آرام کرد. زیرا با این کار دیگر او را ترس و پست نخواهند خاند. او در این باره مکس کرد و پس از آن گفت مردم این کشور دوئل را برای این گونه قضایی کافی نمی دانند من چه فایده ای از جنگ تن به تن با او خواهم برد؟ بر فرض اینکه او را به مبارزه طلبم. در این موقع ای را که به سوی سینه او دراز شده بود به خاطر آورد و نتوانست از وحشت و لرزیدن خودداری کند. وی در تعقیب سخنان خود گفت: بر فرض اینکه من تیراندازی را یاد بگیرم و به هدف بزنم و او را بکشم. دیگر از فکر کردن خودداری کرد. سری جنبانیده و چنین گفت: ولی چه فایده ای دارد که انسان شخصی را برای آنکه که علاقه او را با زوجه زناکار خود قطع به نمایت به قطع برساند؟ علاوه بر این احتمال قوی می رود که من کشده شوم. در این حالت من بیگناه قربانی خواهم شد. این دوئل مرا به مقصود نخواهد رساند. این اندیشه را از سر خود بیرون کرد و تصمیم گرفت زوجه خود را طلاق بدهد. و به یادآور که بعضی از شوهران فریب خورده مانند او به وسیله طلاق این گونه را حل و فصل نمودند. باز او به خاطر آورد که اغلب در این موارد زوجه مطلقه و معشوق خود زندگانی زن و شوهری را ادامه دادهاند بدون آنکه با هم ازدواج کند. زیرا آین کلیسای روس به زوجه زناکار و مطلقه اجازه نمی دهد که دو مرتبه ازدواج کند و کارنین نمیخواست چنین بشود. کارمین نمی‌خواست که زوجش آنا کارنینا از خیانت و گناه خود استفاده کند و خیشتن را کاملا آزاد ببیند و به و آسودگی با معشوق خود در جلوی تمام مردم که او را کارنین می‌شناختند به او احترام گذارند زندگی کند این فکر و اندیشه کارنین را موذب و دردناک می‌ساخت از این رو اندیشه یه طلاق را از سر خود بیرون کرد سرانجام راه حلی که تمام مقاصد او را برمیآورد آورد به خاطرش قطور کرد و آن این بود که زوجه خود را نگاه دارد و از او انتقام بگیرد. به وسایل مقتضی حدی برای روابط و علاقه عشقی قائل شود. سعی نماید آنچه واقع شده است پنهان بدارد و نگذارد افتضاح و رسوایی به باراید. خوب که در این باره فکر کرد چونین به نظرش رسید که این راه حل است. و به دین وسیله یک طریق انسانی و نیکی را میپیماید از این رو گفت به این وسیله راه توبه و ندامت را در برابر آنها باز نمودم با این اندیشه اخیرش در اداره کار خود در پترزبورگ قلم برداشته و نامه زیر را به فرانسه برای همسر خود نوشت در بین صحبت های میان من و تو شده است من گفتم تصمیم خود را در اون به تو ابلاغ خواهم کرد آن این است رفتار تو هر چه باشد من شایسته نمیدانم که آنچه را خداوند جمع کرده است جدا سازم. بیپروایی و بلحرسی بلکه خیانت و گناه یکی از دو همسر نباید سبب فروریختن شلوده خانواده گردد. از این رو به خاطر خودم به خاطر تو و به خاطر فرزندمان لازم و ضروری میدانم که زندگانی ما مانند سابق برقرار باشد. و هیچ شک و تردیدی ندارم که تو اکنون احساس به ندامت و پشیمانی می‌نمایی و حاضری با من همکاری کنی که علل اختلاف را از بین برداریم و گذشته را فراموش کنیم زیرا میدانی که در غیر این صورت آینده تو و فرزندت چه خواهد بود من امیدوارم که در این باره بعد مفصلا با تو صحبت نمایم و چون نزدیک است فصل تابستان به پایان برسد من از تو می که حد اکثر تا سهشنبه آینده به پترزبورگ مراجعت کنی و اهمیت فوقالعادهای به اجابت این درخواست خواهم داد پس از آن که کارمین این نامه را نوشت دو مذهب آن را خواند و از طرز انشاء آن خوشش آمد او با کمال احتیاط نامهای نوشته بود و ابدا در آن علامت تهدید و خشونتی دیده نمیشد او پل طلایی بین خود و همسر خیش افکند تا زوجش در صورت توبه کردن به از آن عبور کند کارنین نامه را به پایان رسانید و یکی از پیش را خوانده و از وی خواست که آن نامه را صبح فردا به بیترخوف ببرد و به دست همسرش آن برساند گفتار دوم آنا همین که فروسکی به وی گفت که نباید حدی را برای روابط خود قائل شود کمی خشمناک شد ولی بیش پیش خود تصدیق کرد که حقیقتا نمیتواند آن بعد را ادامه دهد و میباید برای خود حدودی قائل شود وقتی آنا از شوهر خود که با سراحت لحجه به اعمال و رفتار خود اعتراف کرده بود جدا شد پیش خود گفت که ویکار کار خوبی کرده است که همه چیز را به شوهر گفته و دیگر لازم نیست در محیط آلوده به دروغ و نفاق زندگی کند. امنکار نینا تست کرد که موقعیت او پس از اعتراف بدتر از سابق شده است ولی خود را به این دلداری میداد که اعترافش او را از وضعیتی که قابل تحمل نبوده بیرون آورده و حدی برای آلام او و شوهرش تعیین کرد. و هر یکی از آنها می زندگانی و آینده خود را برا سر و حقای روشن و معین نمایند وقتی آن صبح روز دیگر از خواب بیدار شد نخستین چیزی را که به یاد آورد اعتراف او به شوهرش بود خیلی موچه و نگران شد و نفهمید چگونه جرأت کرده است که آنگونه گستاخانه شوهر خیش را از راز مخوف و پلید بیاگاهاند و نیز نتوانست این اعتراف را پیشبینی کند ولی در هر حال او اعتراف کرده و همه چیز به پایان رسیده بود کارنین هم اعتراف او را شنیده و بدون آنکه که کلمه ای به او بگوید رفت شب گذشته این به نظر آنکارنینا رسید که موقعیت او کاملا واضح و روشن شده است ولی وی اکنون حس می کرد که موقعیتش پیچیده و مشکل شده است وی درباره افتضاح و رسوایی که قبلا هیچ به فکر آن هم نبود بنای اندیشه را گذاشت و وهم و خیال را که ممکن بود شوهرش بکند در نظر خود مجسم ساخت و منتظر بود که رئیس پیشخدمتان آمده و او را از خانه بیرون افکند و افتضاح رسوایی او را عالمگیر سازد آن ناکارنینا از خود پرسید که اگر شوهرش او را از خانه بیرون کند به کجا میتواند برود ولی وی پاسخی برای این پرسش پیدا نکرد. وقتی آنا کارنینا به فکر فرانسکی افتاد، چون این به نظرش رسید که دیگر او را دوست نمی دارد، و بختون حس می‌کند که فرانسکی بار سنگینی بر شده و نمی‌تواند خیشتن را تقدیم او نماید. همچنین به نظرش رسید، سخنانی را که روز گذشته به شوهر خود گفته بود، مردم در شهر آن را شنیدند. از این رو جرأت آن را نکرد که خادمه خود را بخواند و یا به چهره فرزند خیش نگاه کند استراب و نگرانی و حس خجلت و ندامت به آن کارمینا دست داده و بی اختیار دو قطع اشل از چشمانش سرازیر شد و دیگر تا نیاورد چهره خود را در میان دو دست پنهان کرد و از دل فریاد برآورد. آه پروردگارا چه کنم در این لحظه خدمت در حالی که قهوه برای او آورده بود داخل شد. آنا به او گفت نه نه من چیزی نمی خواهم. خدمتکار آنوشکا گفت سیرج و پرستارش منتظرتان تانی باشن. در این موقع از بیرون صدای سیرج که از درد فریاد می شنیده شد. مادر مادر آنا متوجهش شده پرسید چه شده؟ بچه بر سر او چه آمده؟ خدمتکار گفت معلوم می شود که از پلکان افتاده و پایش زخم شده است. آنا فوری به سوی پلکان دوید و طفل و پرستارش را در پلکان دید. ولی همین که زخم طفل را دید، مطمئن شده نگاه خامیزی بر پسر خود افکند و گفت: مگر همیشه به تو نمیگویم که ندو. طفل با خجلت پاسخ داد: ما در جان، دیگر نخواهم دوید. آنا طفل را به سینه چسباند و چهرهی طفل از خوشحالی باز شد. طفل در موقعی که منتظر خشونت و ملامت مادر بود، احساس محبت وی را نموده زیر لب گفت: مادر، آیا مرا دوست می‌داری؟ آه پروردگارا، آیا ممکن است او طفل خود را دوست نداشته باشد؟ آنا فرزند خویش را بوسید و چهرهی خود را در شانه‌های او پنهان کرد تا اشک‌هایش را نبیند. آنگاه برگشته و به سوی اتاق خود شتافت. فرزندش او را از یأس و سردی بیرون آورد. را به یاد وظیفه‌ای که در خلال این هفت سال اخیر به عهده داشت افکند. آدی، او مادری مهربان و باوفایی بود که سعادت طفل خود را از هر چیز بالاتر میدانست. آن خوشحال شد وقتی دید که حس مادری او یک پشتیبان محکمی برای او خواهد بود که نه شوهرش و نه معشوقش توانند آن را از بین ببرند. حال بگذار شوهرش او را مفتزح و رسفا کند یا معشوقش او را ترک و فراموش نماید او طفل خود را دارد که با وی دلگرم خواهد شد و زندگانی را بر او شیرین و گوارا خواهد نمود فرزندش بر او حقی دارد که باید آن حق را پیش از آنکه طفل را از او بگیرند و یا بین آنها جدایی بیفكند آن حق را ادا کند آری او باید طفل خود را گرفته و از این موقعیت مخف فرار کند یگان راه حل قضیه همین است و بس ولی به کجا برود فوری به این سوال پاسخ داد به مسکو ولی پیش از هر اقدامی باید نامه‌ای به آن دو بنویسم آنا کارنینا برای شوهر خیش چنین نوشت من با فرزندم خواهیم رفت زیرا من پس از آن چه گذشت نمیتوانم در خانه تو باشم من برای این فرزندم را با خود میبرم چون که بدون او نمیتوانم زندگی کنم سزاوار چنان است که تو مرد بزرگوار و جوان مردی باشی و او را برای من بگذاری آنا کارنینا نامه فوق را با سرعت عجیبی نوشت بدون آنکه قلمش گیر کند یا بلرزد پس از آن بروی گران آمد که به فتوت و تو کرامت شوهر خیش پناه برد از این رو نامه را پاره کرده و به فکر آن افتاد که نامه دیگری بنویسد و در وقتی که فکر و اندیشه می کرد خادمه آمد و نامه شوهرش کارنین را به دست او داد. آنا نامه را با دست لرزان گرفت و با رقبت و سرعت تمام آن را گشید ولی از پایین نامه شروع به خواندن آن کرد. چون تابستان نزدیک است به پایان برسد من از تو می خواهم که در ظرف سه روز به پترزبورگ مراجعت کنی و من بر اجابت این خواهش اهمیت فوقلاده قاید خواهم بود. آنا را از ابتدا خانده همین که به پایان رسید، احساس نشستن عرق سردی بر پیشانی و وقوع یک بدبختی و نکبت غیر منتظری را برای خود پیش بینی نمود. صبح که آنا کارینا بیدار شد، از اعتراف نزد شوهر خود پشیمان شده، فکر میکرد که چقدر خوب میشد اگر میتوانست اعتراف خود را پس بگیرد، و که شوهرش در نامه خود اعتراف او را ندیده گرفته و به او اطمینان میدهد، ولی با این همه باز شوهرش به نظر او مخوف و حول آمده زیر لبتونین گفت او حق دارد او همیشه حق دارد همه او را عاقل و دانا می داند. ولی هیچکس کس مانند من او را نمیشناسد آری کسی نمی داند که او در خلال هشت سال که با هم زندگی کردیم چگونه عواطف و احساسات هم را کشت و حتی مرا موجودی زنده که احتیاج به عشق و محبت دارد به خاطر نیابه آه چقدر من سعی کوشش کردم که او را دوست بدارم و چون موفق نشدم کوشش کردم که پسرم را دوست بدارم ولی سرانجام رسید آن لحظه ای که دیدم دیگر نمی توانم خود را فریب بدهم آری من حس کردم که باید زنده بمانم و دلی آکنده از مهر و محبت داشته باشم و در نامه او خواندم وگرنه سخت و دشوار نخواهد بود که پی ببری چه آینده ای برای تو و برای فرزندت در پیش است او مرا تهدید میکند که پسرم را از آغوشم بیرون خواهد کشید آه شاید هم موفق شود زیرا قوانین جابرانه چنین کاری را مباه میداند ولی چرا او چنین نامه‌ای برای من نوشت او میداند که من دست از پسر خود بر نمیدارم و من بدون پسرم نمی توانم با آن مردی که او را دوست میدارم زندگی کنم و اگر من فرزند خود را از دست بدهم عقل و شرافت خود را از دست خواهم داد و روش و رفتار حرض ترین و ویلگرد ترین زنان را در پیش خواهم گرفت از این رو می خواهم زندگانیم مانند سابق باشد زندگانی ما پیش از این دوزخی بود اکنون چگونه خواهد بود او همه چیز را می داند. او میداند داند که پشیمان نشدم، بلکه هوا را استنشاق کرده معنی عشق را فهمیده مزیان را چشیدم همچنین او میداند داند که ادامه زندگانی ما با هم جز با دروغ و نفاق نخواهد بود ولی او میخواهد از من انتقام بگیرد و زندگانی مرا با یک عذاب وجدانی پیره و تباه سازد من او را خوب می شناسم و می دانم که او همچنان که در آب دریا جولان می دهد او هم در دریای دروغ و دروی جولان می دهد ولی من نمی گذارم او به بقصود برسد و با گسیختن تارهای دروغ و نیرنگ خود را از اصارت وی آزاد خواهم کرد آه خداوند آیا زنی بدبخت از من خلق شده است آنگاه چون اطفال بنای گریستن را گذاشت او گریه کرد زیرا پی به عجز و ناتوانی خود برده و دانست که او نمیتواند تواند آن تارهای مکر و فریب را از هم بگسلد و هرگز حاضر نیست که موقعیت اجتماعی خود را از دست داده موقعیت شرماوری را برای خود خریداری نماید موقعیت زنی که شوهر و پسر خود را ترک گفته تا با مردی که او را دوست داشته زندگی کند کارنینا، از روی یحس و بدبختی و ناتوانی گریش همچنان ادامه داشت تا وقتی که صدای پای خدمتکارش را شنید، خادمه به وی گفت، قاصد منتظر جواب است، آننا بدون آن که به خدمتکارش نگاه کند گفت، آیا او منتظر پاسخ هست؟ بسیار خوب، جواب را خواهم نوشت، ولی چه بنویسد؟ آیا برای شوهر خود بنویسد که مردی را دوست می دارد و قلبش را میان پسر و معشوق خود قسمت کرده است؟ همین که به یاد معشوق خود افتاد از لقزش و سق... سقوط خود وحشت کرده گفت من باید او را ببینم فقط او میتواند مرا راهنمایی کند آنگاه قلم را به دست گرفته و برای شوهر خود فقط این جمله را نوشت نامه تو به من رسید فصل سپام فرانسکی با اینکه خوشگذرانی می نمود ولی علاقه مند به نظم و ترتیب بوده عادت داشت که ماه یک بار خلوت کرده و به حال آمال خود اندیشه کند. و وضع مالی و اخلاقی خیش را به دقت تحت سنجش و بررسی قرار میداد صبح روز مسابقه خیلی زود بیدار شده، اوراق پراکنده خود را جمع کرده به حسابهای خود رسیدگی کرد. دید که وی در حدود هفده هزار روبل به خیاطان و صاحبان مهمان خانه ها و ها مدیون است به علاوه مبلغ سه هزار روبل دیگر هم بابت بهای اسبهایی که خریده بدهکار است با وجود اینها مبلغ 20 هزار روبل قرض برای شخصی مانند او که به عقیده مردم بیش از هزار روبل درآمد سالیانه دارد چیزی نبود در حقیقت هم درآمد او همین غردها بود ولی محبت برادری او را وادار کرد که سه این مبلغ را به برادر خود بدهد تا بهی بتواند به خود را که از زمان عروسی خود با شاختاد خانمواری اشکوفا جمع شده بود بپردازد شاختاد خانمواری اشکوفا دختر یکی از اشراف و بزرگانی بود که چون علی قیصر دستیسه کرده بود اموال و املاکش را ضبط کرده بودند پس از درآمد صد هزار روبل سالیانه فرانسکی بیش از بیست و پنج هزار روبل برای او باقی نمی چون فرانسکی مرد ولخرج و عیاشی بود لذا مجبور شد دست توسل به سوی مادر دراز کند و از او کمک بخواهد مادرش مبلغ بیست هزار روبل از درآمد سالیانه خود را به او بخشید وقتی مادر فرانسکی دید که رابطه و علاقه فرزندش با آن نکارمینا نزدیک است آینده او را از بین ببرد، کوشش کرد تا به راه راستش هدایت کند. ولی فرنسکی نصیحت مادر را گوش نداده و مادر هم از کمک خود امتناع وردید. فرنسکی بر اثر قطع کمک مادرش نگران شد و در فشار افتاده خواست از بخششی که به برادر خود کرده بود سرپیچی کند ولی دید برایش دشوار است. زیرا وی این همه را برای مهر محبتی که سابقا به شاهزاد خانوم باباریا داشت کرده است. شانس فرافکی در زندگانی این بود که وی پای بند عقاید مخصوصی بود عقیده داشت که اگر مرد شرافتمندی در بازی قمار ببازد باید بدهی خود را بپردازد ولی پرداخت دین به خیاط و بقال چندان ضرورتی ندارد او نباید به مردی دروغ بگوید ولی دروغ گفتن بزن هیچ مانعی ندارد. زن نباید کسی را فریب بدهد ولی مانعی ندارد که شوهر را فریب دهد. از اهانتی که به او شده است نباید چشم بپوشد ولی اهانت او به دیگران عیوی نخواهد داشت. فرونسکی روی این عقاید و محاسبات تصمیم گرفت که با فروختن از پایش بدهی خود را که نمیتواند از آن فرار کند بپردازد. سپس به صرافت رابطه عشقی خود با آنا کارنینا افتاده. دید که آنا کارنینا خانم محترمی است که او را دوست می‌دارد و او هم به وی محبت دارد پس او پیش از شوهر آنا کارنینا حق دارد که از آنا تمتع برگیرد ولی رابطه و علاقه فرونسکی با آنا از وقتی که مطلع شده که او جنین در شکم دارد تغییر کرده و مسئولیت بزرگی را احساس نمود و به معشوقی خیش نصیحت کرد که شوهر خود را ترک کند ولی همین که فرونسکی تنها ماند و نیک در این باره اندیشه کرد دریافت که نصیحت او عملی نیست و پیش خود چنین گفت اگر آنا کارنینا شوهر خود را ترک گوید معنی آن این است که او باید با من فرار کند ولی یا من می توانم ارتش را ترک گویم و یا به قدر کافی پول دارم که با او فرار کنم هنگامی که در این اندیشه ها بود خدمتکار شاخزاده خانم بتسی آمده نامه ای از خانم فرانسکی آورد شاخزاده خانوم بتسی از فرونسکی خواهش کرده بود که به خانه او بیاید و با آنا کارنینا ملاقات نماید گفتاری چهارم فروسکی با حال نگران به خانه شاهزاده خانم بیتسی رفت ولی در عرض راه پیش خود می گفت سبب دعوت ناگهانی آنا از من چیست و چرا شاهزاده خانم بیتسی را وسیله قرار داده است فروسکی آنا را در باغچه خانه شاهزاده خانم بیتسی منتظر خود یافت پیش رفت و آنا دست فرناختی را محکم فشار داد همین که از چهره وی را مشوش تشخیص داد به او چنین گفت خشمناک و نگران نباش از اینکه تو را در اینجا ملاقات می نمایم زیرا لازم بود چه زودتر تو را ملاقات کنم سرونسکی نیز به نوبه خود متوجه نگرانی و پرندگی رنگ آن مکانینا گردیده با اضطراب پاسخ داد من خشمناک باشم هرگز ولی این دعوت ناگهانی تو مرا را متوحش نمود آنا دست در بازوی او افکنده در بین درختان راه افتادند. آنا به او گفت بیا من میخواهم با تو صحبت کنم. سرونسکی بطفجه شد در حالی که به چشمان درشت آنا کارنینا نگاه میکرد پرسید چه اتفاقی رخ داده است؟ آننا سراسیمه گفت من به همه چیز در نزد شوهرم اعتراف کردم. سرونسکی پیش از آن چیزی بگوید به جلو خم شد. گویی پشت خود را برای فرود آمدن فشار ن آماده می کرد همین که آنکارنینا آن کلمات را بر زبان آورد سر راست ایستاده با تکبر و خشونت گفت آری آری کاره بسیار خوبی کردی این کار هزار بار بهتر از آنا بقیه یه جواب او را نشدید زیرا وی خیره به شهره او می تا ببیند اثر شنیدن آن خبر در او چگونه خواهد بود. با این حال از سیمای او اندیشه درونی ویرا که لزوم جنگ تن به تن باشد درک نمود و در تفسیر نگاه خشن او اشتباه کرد. آنا کارنینا از وقتی که نامه‌ی شوهر خود را خوانده بود، چاره ای جز این نمیدانست که همه چیز را به حال خود گذارد و تغییری در آن زیرا او آن جرأت را نداشت که موقعیت خیش را متزلزل کند و پسرش را ترک گوید و به مشوق خود ملحق گردد. ولی با وجود مراتب مذکور به این ملاقات اهمیت شایانی داده و امیدوار بود که او را از این نگرانی رهایی بخشد. و فرونسکی که مرتب به او میگفت همه چیز را بگذار و با من فرار کن ولی این خبر اکنون در او چندان اثری نبخشیده و آننا از این رو با یه و نگرانی گفت بگیر و بخاند. آنگاه نامه شوهر را از دستگش خود بیرون آورده به فرونسکی داد. فیروزکی هم نامه را گرفت ولی آن را نخوند و برای دلداری آن گفت فهمیدم فهمیدم من چیزی نمیخواهم جز اینکه به هر وسیله ای که شده است خوشی و سعادت تو را فراهم سازم آنّا کارنینا گفت چرا این را به من میگویی آیا خیال میکنی من در این امر شک و تردیدی دارم ولی اول نامه را بخواند فیروزکی با انگشتان نامه را گشود ولی مدتی بدون آنکه نامه را بخواند در اندیشه فرو رفت. او درباره جنگ تن به تن و موقعیت خود در برابر شوهر آنا و فضاحت و رسوایی این امر فکر می کرد. آنگاه آهی کشید و نامه را خواند. سپس با تعجب و حیرت به آنا کارنینا نگاه کرد. آنا کارنینا با صدای لرزانی گفت: «خای دیدی که او چگونه مردی است؟» فرونسکی کلام آنا را قطع کرد و گفت: «آری آری» ولی من گمان میکنم کنم غیر ممکن باشد آنطوری که او گمان میکند وضعیت به همین منوال باقی بماند. آنا گفت: چرا آن را غیر ممکن میدانی؟ آنا کارلینا کوشش زیادی نمود تا فورو ریختن قطرات اشکی که در چشمان شهلایش جمع شده بود، خودداری کند. آنا میدید که سرنوشت او معین شده است. دیگر اهمیت نمیداد که مشوقش پس از آن چه خواهد کرد. سرونتی چنین پاسخ داد: غیرممکن است که همه چیز به یک منوال باقی بماند زیرا این وضع غیر قابل تحمل است و من خواهش میکنم چهره فرونسکی سرخ شده و لحظه ای سکوت کرد سپس در تغییر سخنان خود گفت خواهش بندم به من فرصت دهید تا نیک در این باره بیاندیشم و راهی پیدا کنم که برای همیشه با هم زندگی کنیم و فردا...